فصل دوازدهم دریا زود گود شد در این جای دریا یک بریدگی گسار بود که دریا چند پله می‌خورد و با شیب تندی می‌رفت پایین و آب به دو بالا می‌رسید هنوز تفنگش تو دست راستش بود و زیر آب شنا می‌کرد نوازهایش مثل بادکنک پر از باد شده بود و دوروورش بلو بود باید زودتر از اینجا برم. نکنه بادایی که تو رختامه بره بالا رو آب و باباش ببینن و جان بدونن و تیرم بزنن. این تفنگ پلیس هم دیگه به کارم نمیخوره. تفنگ خودم بهتره. همونطور که شنا کرد، لحظه خودش را ول داد و فوری تفنگش را همایل کرد و سگک تفنگ و قطار فشنگ غارتی را باز کرد و تو آب ولشان داد. راحت شدم. بریم پیش مایا. باز توند شنا کرد و هر از گاهی چوخش را که دورش بلو بود به تن خود میچسپانید. آب ولرم بود. نزدیک ساحل آب ملوله اما میون دریا که برم خونک میشه. کوشش میکرد هرچه به تواند ساحل را پشت سر بگذارد. خوب میدانست که هنوز میشود با تیر زدش. نیروی تازه تو رکایش دویده بود. کاشکی ماه نبود. من کالا سرم را از آب در نمیارم. اما کدومشون میتونن یه چش هم زدن که من سرم از آب بیرون میارم نفس بکشم من رو بزنه چیزی که هست من نمیخوام پیم رو پیدا کنه شایدم خیال کردن گوله بهم خورد و حالا کنار ساحل واایستادن که نشم بیاد رو آب اما خدا رحم کرد که گلوله از پر گوشم رد شد باید خیلی از ساحل دور بشم باید همش زیر آبی شنا کنم نفسم نبره خوبه به نظرم مردک را کشتمش شنو کرد به میان دریا حالا دیگر رختهایش سنگین شده بود و شنا کردن برایش دشوار بود دیگر زیر رختهایش هوا نبود اگه رخت درم نبود مثل ماهی شنا می کردم هزار بار شکر که دریا آرومه اگه بود آب برم می طرف ساحل هنوز از تیر دور نیستم باید یه خورده دیگه برم بعد بپیچم طرف چپ خیال کرد از تیر رست دور شده و پیچید طرف چپ هنوز زیر آب شنا می وقتی که از آبم بار قوام رد شدم اون وقت میتونم یه دقیقه سرمو از زیر آب در بیارم نفس بکشم کاشکی رختنم نبود. تفنگش دست و پا بود هردم از پشتش سر میخورد تو سینش. یادم رفت و خشکی سگکش کوتاهتر کنم که چسبونه تنم بشه آدم همه چیز یادش نمیمونه. چه خوب شد که از دست اون فیلی با فشنگاش خلاص شدم حالا تهی دریا هستن نفسش سنگین شده بود. تو دماغش آب رفته بود و میسوخت. خیال میکرد دور و قوام است. کمی آمد رو آب و سرش را آهسته از زیر آب بیرون آورد. همان دم چند نفس پی در پی کشید و فوری برگشت به ساحل نگاه کرد. از ساحل دور بود. دو چراغ راهنما که رو فرمن بیرق کوتی بود، تایید دلش را مطمئن کرد که خوب از ساحل دور شده. خوشحال شد. از آبانبار قوام رد شده بود و برابر قبرستان رسیده بود. ممکنه تو چهارتاقیای های قبرستان چی گذاشته باشن. باید تا بنمانه تو آب باشم. بعدیش اینه که ممکنه فشنگام آب ببینن. خوب شد چربشون کردم. تلاش که خوب جسم. حالا ببینم بعدش چی میشه. هرچی خدا خواسته میشه. همچنان که شنا می کرد بند توفنگش را سفت کرد. حالا بهتر شد. دیگر ساحل برابر غنسورخانه را نمیدید آبن قوام پناه بود. برای همین بود که سرش را از آب بیرون آورده بود و شنا می کرد. این چوخ هم از باب زحمته اما لازمش دارم هنوز نوع نوعه ماه خیلی بالا آمده بود و مستقیم تو چشمانش میتابید و نور زلالش رو آب میرقصید. اگه هم حالا یه بلم مایگیری جلوم سبز شد چی کار کنم؟ اما خوبیش نه که کسی این طرفا برای مایگیری نمیاد. همه میرن طرف های با سیدون. آرام و با نیروی تمام شنا می کرد. خوشی لرزانی تعدیرش را زیر و رو می کرد. از ساحل دور بود. از مدرسه سعادت و قبرستان یهودی ها هم گذشت. بعد از برابر برچه بلند و سیاه امارت دریابگی که مثل دوتا قول تو دریا گردن کشیده بودند رد شد خوب در رفتم اما این تفنگچی بدبخت عجلش رسیده بود اما خیال میکرد که چون پشت سرم دریاست راه فرار نیست و میتونه بگیردم سبون بسه قربونی خریت خودش شد من چاره نداشتم خدا کنه که فقط زخمی شده باشه ته دلش خوش بود شنا کردن با لباس برایش عادی شده بود دلش شور فشنگهاش را میزد که مبادا آب ببیند. خیال میکرد باز ممکن است کارش به تیراندازی بکشد. حتما تو دو دواز هم چند نفر گذاشتن اما اونجا بر بچه های خودمون هستن اگه لازم باشه تا گله آخری تو تنشون خالی میکنم خیال کردن ناگهان سوزش برنده تو ساق پای خود حس کرد و تا ته دلش را شکافت. به چابوکی مانند مارماهی پیچه تون دیزد و قاوس کرد بالای سر خود بمبک چابوکو و با تیغه ار نیرومندش را دید که آن هم فوریچ هرخی زد و قاوس کرد و به او حمله ور شد برقی از خوابی که دیده بود تو سرش روشن شد و مرد بمبک زیرش بود و بیان که فرصتی بودهد کاردش را از کمر بیرون کشید و آن را لایه دندانهای خود گذاشت و محکم تیغه برنده آن را گاز گرفت. سپس به چابکی پشت گرده بمبک پرید و بیدرنگ با هر دو دست عره پرتیغ نیرومند او را محکم چسبید. بمبک با نیروی لغزندش محمد را به چپ و راست میچرخاند. محمد میدانست که به هیچ رو نباید عره او را از دست بدهد. میدانست هر جای دیگرش را بگیرد از تو دست هایش و بیرون می رود. پیش از این باز بمبک دیده بود اما تو دریا باش گلاویز نشده بود. از بمبک بدش می آمد. تیخای درشت و شکاونده ی ای بنبک بمبک تو دست فرو رفته بود و گرمی و سوزش خونی را که از دستش بیرون زده بود حس می کرد. بی خطیقه عره بمبک را گرفته بود. آنجا فاصله تیخ ها از هم دور بود، اما تیخها ها و شکافنده تر از تیخ های جلو بودند. می دانست دستهایش دریده، آب شور زخمای دستش را می سوزند، کشید تو انگشتانش را لای تیخ ها به انگشتان دست چپش را میان فاصله تیخ خوابانید و دست راستش رو دست چپش چفت شد. اما باز چند تا تیخت و گوشت کف دستش فرو رفته بود چاره نبود بمبک او را سخت می چرخانید. گاهی غاوس می کرد و گاهی رو آب می آمد و با دم نیرومندش رو آب شلاق می زد. محمد مقاومت می کرد می خواست جانور را خسته کند ناگهان بمبک به عمق دریا غاوس کرد و همچنان در تای آب به سرعت راه دریا را پیش گرفت و محمد را با خود کشانی اگه خیلی دور بره دیگه برگشتن از میون دریا ممکن نیست میخواد نفلم کنه اما ترسیده اگه نترسیده بود میون دریا نمیرفت نباید بذارم دور ببردم اگه ببره کارم زاره تند و چابک با دست راست کار را از میان دندانهایش غاپید و بیدرنگ تیغه آن را زیر گروی نرم بمبک فرو برد و با قوت تمام به طرف شکم او جر داد بمبک چرخ تندی زد و پیچ و تاب خورد محمد هنوز اره او را تو یک دست خود داشت. تیغه کاردش به جایی رسیده بود که دیگر پیش نمیرفت. به یک استخوان گیر کرده بود. زود آن را بیرون کشید و پشت گردن ه ماهی فرو کرد. بمبک سست شد. ورش خون سیاهی تو آب شور دویده بود. سیاهی خون زیر آب میرخسید و جوش میخورد. محمد ولش کرد و کاردش تو تن بمبک مانده بود. بن مثل پنبه آب کشیده میان آب شلوول بود و کم کم داشت میآمد رو آب. محمد نفسش تنگ شده بود. خیلی آب خورده بود. به چالاکی خودش را بالای آب کشانید و چند نفس پی در پی کشید و سرفه کرد و ته کلویش میسوخت. نزدیک بود خفه بشم چه زوری داشت. فکر اینش دیگه نکرده بودم. خدا یا چه ورایی داری مثل آدم میمونه. از آنجا که او بود، فقط نور چراغهای قرمز پیدا بود که به نظرش خیلی دور می آمد. سیاهی نخلستان جفره را شناخت، اما از ساحل خیلی دور بود. دست کم باید نیم ساعت دیگه شنا کنم. چقدر میون دریا کشیدم. خدا رحم کرد که خیلی گپ نبود. به نظرم خیلی از گوشت پام دریده. دست برد و رو ساقه پاش کشید. جای زخم رو دقیقا نمیدانست کجاست و زخم را رو ماهیچه پایش کورمال کورمال لمس کرد. شکاف بزرگی بود که انگشتش توش میرفت. زخم درد نداشت اما تمام تنش درد میکرد. با این دست و پا چجوری میتونم پارو بزنم؟ باید شهر رو کمکم کنه. چه زن خوبیه؟ چقدر تو خونی من زحمت کشید؟ چقدر این کشخلقی منو تحمل کرد؟ باز به زخم دست و پایش فکر کرد. آبشور خوبش میکنه. خونش بند میاره. دیگه فکر این غذای دریایی رو نکرده بودم. خوب شد که کاردم امرام بود. اما چهیف شد که تو تنش موند. تند به طرف ساحل جفره شنا می کرد. خسته بود. امیدوار بود. زمانی خودش رو انداخت رو آب که خستگی در کند. اما لباسهایش سنگینی میکرد و تعادل او را به هم میزد. چند تا بلم و یک ماشوه کنار ساحل مهار شده بودند و با نرم موجها بالا و پایین میشدند. باز شنا کرد و پس از مسافتی آرام قوس کرد و خودش را به یکی از بلم ها رساند. حس کرد می تمام شده زیاد ازش خون رفته بود دستهای زخمش به لبه بلم چسبید و به آهستگی گربه از آن بالا رفت و خود را میان بلم کشانید حس کرد دیگر نمیتواند تکان بخورد. زخم پایش را ورنداز کرد. شکاف بزرگی بود. زخم سرخ بود و خونابه ازش بیرون میزد. دستهایش سوراخ سوراخ شده بود. سرفهاش گرفته بود. نمیخواست بلند سرفه کند. آبادی جفره نزدیک بود. شوری آب لای گلویش مانده بود. خیلی آب خورده بود. گلویش درد میکرد. کف بلم دراز کشید اما فوری پا شد نشست و همون دم چند تا زد و چند غلوب آب شور بالا آورد سرش سنگین بود آب تو گوشش رفته بود باز کف بلم دراز کشید بلم خالی بود کمی آب گرفته بود بوی ماهی گندیده تو دماغش خورد بلم ماهی باید بایدم بوی ماهی بده اما گمون ماهی چیزی اینجا مونده گند کرده از خودش بدش آمد خسته شده بود، تای دلش مالش میرفت. سنگینی تلخی رو دلش فشار میآورد. کاشکی کاش کی میونه دریا مرده بودم، چقدر خوب آدم میونه دریا نفله بشه. ای خدا، اگه این زن و چی نبود، کار ما به اینجا نمیکشید چقدر جون سختم، مثل سگ میمونم. هفت جون دارم، زندگی رو از کجا شروع کردیم و کجا کشید؟ ده دوازده نفر دو جنگ تنگک کشدم، اینجا هم چه نفر برای چه؟ چرا باید تو دنیا ناحق باشه؟ چرا باید ظالم باشه؟ چقدر بهشون التماس کردم. خلقش تنگ بود و از خودش بدش میومد. میخواست پا شود راه بیفتد اما پشتش به کف برم میخکوب شده بود. نمی پا شود. از پادر اومدم. یه خورده دیگه بمونم خستگی در کنم. نه. باید زود برم این فشنگارو خوشکشون کنم. دیر وقته شهرو چش به راهه بیچاره خیلی دل شور میزنه باید خیلی از شب گذشته باشه پایش رو گذاشت رو ماسههای شاداب ساحل راه که میرفت میلنگید عجب کشکش سابیدیم که همش دوغ پتی بید با این وضعمون خوبه که تو دواز بوتوفنجیای حکومتی هم بخوایم بجنگیم مرد شل نده میگه از جنگ و برگشتی چند خراش برداشی مثل خر لنگ راه میری هنوز کله گنده زیر لحافه حالا کودا زن و بچهت را بذاری تو بلم؟ بعد آهسته خندید دیگر برزخ نبود نیروی تازه به بدنش راه یافته بود بوی سرشار آزادی تو سرش دویده بود باز رو زمین بود و آزاد بود و کسی سر راهش نبود و به زن و بچه هاش نزدیک شده بود آمد تو نخلستان توفنگش را بیرون آورد اول خوب تکانش داد و آبهای لولش را خالی کرد بعد آهسته گلن گدن زد و پوکی را بیرون پراند با همین فشنگ بود که توفنگ لب سایل از پادر اومد حالا این بیباروت و گلست و اونم لا بود بیچونه چند تا فوت محکم کرد تو خزانه توفنگ و راه افتاد تبرش افتاده بود تو دریا. و نفهمیده بود کی افتاده کجا افتاده وقتی پریدم تو آب یا وقتی با این جونور گلاویز بودم حیف بود خودم ساخته بودمش اگه خودم نساخته بودمش این قده قصهام نمیشد حیف شد حتما افتاده تو دریا تفنگش را حمایل کرد لولش پایین و قنداقش بالا بود تو نخلستان راه افتاد از رختهایش آب میچکید زمین زود از جفره گذشت و به حوالی دواس رسید از کنار دریا زد به نخلستان همه جا خلوت بود تا بختیار که بلمش آنجا بود دور نبود تو آبادی کسی را ندید ماه تو آسمان نشسته بود و زمین را میپایی